بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتهية والإكرام على سيدنا محمد. صلى الله سيدنا ونبينا ومحمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا حبلنا من نامن از واج و ضریات نو برداشیم و اماما فقال رسول الله صلی الله علیه و آله نحب الخلاق إلى الله شعب جلد ما جمال شباب شبابه و جماله و فی سبیل الله توفیقی شد من خدمت شما و جمع حیعتی های مسجد مشرف بشم به امید این بودم که از منظر واعظ مسجد و حیعت استفاده بکنم که گفتن مسئله راه و ترافیک و باران و برادر روحانیمون فعلا معطلا تا برسم آیه نبابی پیشنهاد کردم که من چند دقیقه مصدهتون بشم و من که سر شب مسجد منبر رفتم و دیگه بودم انرژی و وقت و اینها رو سرف کردم ولی حالا از باب این که از این جمع جلسه هم بهرهی برده باشم من چند دقیقه با شما صحبت می کنم این ای که خوندم و این حدیثی که خوندم براتون توضیح بدم و انشالله با خب با با شما همه جوان و نوجوان و نورسیده و دویرستانی و مدرسهای هستید و همه در حال تعلیم و تعلم و, و تربیت و فرهنگ و خدسه در صدده کسب آگاهی و شناخت و مسائل تربیتی هستید. انشاءالله گویندگانی هم که با شما صحبت میکنن بیشتر انشاءالله روی مسائل وقت بگذارند و مسائل لازم را ارائه بکنن این آیهی که من خوندم دعای حضرت جناب ابراهیم خلیل بود که خوب حضرت ابراهیم و همسرشون فرزندی و اولادی هم نداشتند، سن و سالی هم بر اونها و گذشته بود. از خداوند تقاضا کرد که فرزند داشته باشه. دعاش این بود: رب بنا هبلنا من ازواج جناوهت و ریاتنا قرت اعین. خدایا به من فرزند بده و فرزندی بده که چی باشه؟ قرت اعین یعنی چه؟ نور چشمم باشه، باری کنده، نوری چیش؟ در عربی عرب ها وقتی که یک کسی به قول معروف یک خبر خوشی بهش میرسه نعمت آیدش میشه می‌شه، خداش فرزندی میده، برنامه‌ای مثلاً چنین، چنان به هم دیگه میگن قرت العیون یعنی چشم شما روشن، آه؟ چشم شما روشن. حتی اون وقتی که آدم یه خبر خوشی بهش میرسه از کسیت خوشحالی گاهی افراد مثلا مثلا زنها گریه میکنن اون عشق چشمشون هم که خیلی چشم و صفا میده و شفاق میبانه حتی به همون میگن هم میگن اگه ایان حالا حضرت ابراهیم خلیل از خدا فرزند میخواد به فرزندی که چی باشه مایه چشم روشنی باشه آیه افتقار باشه بعد هم میفرمد که خودم و اون فرزندی که میخوام و جلال المتقینه چی؟ اماما فرزندی میخوام خودم امام جامعه هستم پیغمبرم رهبرم هدایتگر هستم خدا این افتخار رو به من و فرزندان من بده که این فرزند ها مای چشم روشنی باشن امام و پیشوای جامعه هم باشن دقت فرمو یکی از دعاها درخواستایی که پدران شما داشتن از خدا خواستن که خدا بهشون فرزند بده شما رو داده ها؟ شما منشالله برسید بالا به یه سن و سال و شرایطی که صاحب زن و زندگی بشید یکی یه چیزایی که از خدا میخواد چیه؟ فرزند اولاد با ما اصلا به قول خودمون اونایی که فرزند ندارن بچه ندارن خیلی ناراحتن اصلا ندارون رو می روانی وقتشون خیلی تلخه خیلی به در و دیوار میزنن این طرف اون طرف خارج داخل که بچه دار بشن نداشتن فرزند خودش گرفتاری های روحی روانی برای زن و مرد به وجود میاره اصلا این انسان وقتی فرزند داره انگار با قول خودمون خودشو پایدار و مندگار میبینه وقتی فرزنده داره انگار حساس میکنه بردم میمیره و دیگه چراغش خاموش میشه و همه چی تموم میشه اصلا چون ما یه روحی و غریزه مندگاری هم در وجودمون هست اون مندگاری خودمون در آثارمون و بچه مون و خلصه اینها مشاهده میکنیم روی این حساب یکی از خواسته ها و دعا های ما انسان ها این هست که خداوند به ما بده. خب حالا این پیغمبر در سنین بالا از خدا فرزند خواب خدا بهش اسماعیل رو دار. بعد اون همسر نازای او سارا خانوم که باش نسبت هم داشت زن عقیم و البته مسنی بود خدا به صورت معجزه آساب به اون پیرزن هم در سن پیری فرزند عنایت کرد با کرامت الهی اسحاق یعقوب اینا همه فرزندان همون سارا خانوم بودند که وقتی فرشته های الهی آمدند کنار خیمه حضرت ابراهیم بهش مجده دادن که شما از این زن بچه دار میشی اونجا قرآن میفرمد که این خانون فضحه کت یعنی خندید خندش گره گفت عجب من شوهرم پیر مد. خودم پیر زن عقیم جوان بودم بچه دار نشدم چطور حالا اون سرشته های الهی که به صورت یک انسان اومده بودن مهمان حضرت ابراهیم بودن اون قصه مهمانی و بریان کردن اون گسالهی که آماده کرده و ساده اینا داستان زیبایی داره آه؟ این زن تعجب کرد اون معمور نلاحی گفتن و علالله این برای خدا آسانه که حالا یزید پیر زنم بله پرزن به دنیا بیار پرزن به دنیا آمد اصلا اسحاق و یعقوب و یوسف و اینا همه اینا پرزندان حضرت ابراهیم هستن پیغمبر اصلا اول انبیاب حضرت ابراهیم بوده حتی پیغمبر ما هم میگه من به دعای جدم ابراهیم به دنیا آمدم. به این صورت در این اصلا سلسله بی تو این پیغمبران مثلا نگران نگاه کنیم حضرت زکریا از کسانی بوده که فرزند نداشته بله در سنین بالا خودش و همسرش فرزندی نداشت به خدا میگه انی خفت الموالیه من برای من نگران آینده خودم هستم که من میمیرم بله بچه ندارم، فرزند دارم، من پیغمبر با این شرایط. مخصوصان وقتی که متکفل امر مریم شد توی مسجد مریم رو او سرپرسته میکرد، دیگه این دختر چقدر آبده، زاهده اصلا در وقت غذا و تعام از بهش برش قضا این خانوم رو خیلی دلش سوخت که عجب من خلاصه فرزند دارم و هم به خدا و فربر نه هبل ناملا نکه زریعتا تعبه اینکه سعی دعاه دعا کرد قرآن میگه و به هبله و یحییا ما دعاهشو مستجاب کردیم در این سنین پیری آم و بهش که فرزند دادیم اسمش چی بود یحییا يحيا بود یحیای پیرنبر آم یحیای پیرنبر هم زمان و حضرت عیسی حضرت عیسی از مریم با اون مقدمات به دنیا آمد این هم خلاصه زودتر از او به دنیا آمد با اون شرایط هم یحییام معجزه آسا بود هم حضرت عیسی معجزه آسا بود این دو تا پیغمبر بچا چه مسئله رمز رازی هم هست تو تمام پیغمبرایی که خدا در قرآن میفرماد پیغمبرا همه زن و ازدواج و بنین و حفده و نسل و اولاد داشتن این دو تا پیغمبر به داستانشون البته سنی هم برشون نگذاشته بودن حضرت یحیا 22 سالگی شهید شد حضرت ایساب بالاترین سنی که برشون نوشتن سی و چند سال نمیشتن نه ازدواج نگردن ازدواج نکردن این دو, دو پیغمبر سید و حصول بودن ازدواج هم بود. برنامه حضرت یحیا رو اگر من این نکتر را بعد بد نیست حضرت یحیا که به دست اخت و نصر زمان خودش به شهادت رسید حضرت میگه امام حسین حضرت سجاد میفرماند که پدرم حضرت امام حسین از مک مدینه که رفتیم به مکه از مکه که میمادیم به سرزمین کربلا هر جا پیاده شدیم بار انداختیم و میخواستیم بریم پدرم متذکر قصه حضرت یحیامی شد و میگفت اینم هوان دهر از بدی و سستی این روزگار و در اینه که یه فردی مثل حضرت یحیا رو سرش رو بریدن و برای یک زنازاده بردن امام سجاد که هنم میخواد بگه که امام حسین علیه السلام با این سخنش پیشگویی میگرده که در آینده هم سر خودش رو برای یک زنازاده شام و یزید ببرند میگه ما پیاده نشدیم سوار نشدیم مگنیم که پدرم قوله ذكر قصه و وقال ان من حوان الدر ان الرئيس یحیا اوهد الى بغي من بغاي بني اسرائيل امام حسين میگن که امام حسین میگن شش ماه میگن به دنیا اومده حضرت یحیا میگن همین بوده که اون شاعر میگه بس عشق شهادت بر سرش بود ره نهم مهر رو شش ماه بیمودین شعرام حل حد شهادت های بین حضرت یحیا و حضرت امام نقل شده آه. اینجا هم حضرت زکریا از خدا چی خواست آقا فرزند رب لنا هب خدا به من فرزند بده فرزند طیب تو دعای حضرت سلیمان دیدم رب اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی انمت امت بها و علی والدی بن اعمل الصالح طروا و اصلحلیفی زرریتی از قضا دیدم در جایی که اونایی که بچه ندارن این آیه رو زیاد بخونن اصلحلیفی زرریتی رو ها؟ یعنی خدا به من فرزند بده و اصلحلیفی ظریتی، فرزند صالح یه جگه فرزند طیب یه جگه فرزند چی صالح یه جگه فرزند قرت اعین پیغمبرها، دعاشون زندگیشون الگو و درس برای همه هست پیغمبران ها معلم همه ما انسان ها هستن اگه دعا خوندن درخواست کردن کار و برنامه برای ما حجت برای ما میزانه برای ما الگو هست باید بهشون اقتدا بکنیم ما هم باید دعا کنیم خدا اینچه ولی اونی که میخوام بشه اشاره کنم برادر مدده هم آینه هندیان آمدن این مسئله است که از این آیات استفاده می کنیم که فرز صرفاً فرزند خواستند و فرزند داشت شدن خیلی به قول معروف ایدئال نبوده بلکه اون قید و اون صفتش را هم باید توجه داشت که فرزند خوبه ولی چه فرزند خوبه؟ فرزند طیب چه فرزندی خوبه؟ فرزند صالح چه فرزند خوبه؟ فرزنده ای که مایه افتغاره پدر مادر و خانواده باشه نه هر فرزندی به صورت مطلق خدایا به من فرزند بده پیغمبر اینجور دعا نگرد خبتا فرزند بده و خب حالا بچه ها پیغمبر ها از خدا فرزند بخون با همین که بگن خدایا ها هبلنا حبلنا ملنون که درگیتن طیبه به من یه نسل طیب بده با همین دعا کار تمام بچه های پیغمبر ها همه خوب میشدن ها؟ این همه ما دعا دعا کنیم با یک دعا کار تمومه ما هزار تا آرزو دعا داریم درخواست می‌کنیم با یک دعا مسئله خاتمه پیدا میکنه دعا ببینید پیشنهاد یه درخواسته اگه این پیغمبر میخواد به حضور شما آدم فرزند طیب و صالح میخواد باید خودش بشه معلم مادر خانواده معلم محیط همه این علل و عوامل باید به هم دیگه چی بشه دست بده تا این فرزند چی بشه صالح بشه و الا اگر حضرت نوح بشه عمره هزار ساله داشته باشه یه فرزندی خدا بهش میده که این فرزند خلاصه چی میشه آقا وقتی به خدا گفت خدایا این کشتی نجات آماده هست این پسر منم خلاصه نجاتش بده خدا بهش گفت نه هو لک من اهلک عملان غیر غيره ساله این بچه اهل تو نیست درست از تو به وجود اومده خانواده تو بوده ولی با تو سنخیت نداره تو توحیدی هستی خدایی هستی این کافر، این چنینه آخرام تو اون طوفان چی شد فرزنده چی؟ قرر شد که شما تو یه شعر میگید که چی بله باریکلا باریکلا بچه های ایند بچه های مسجدی باید ذهنشون با این اشعار مثال ها برنامه ها پر باشه پسر نو با بدان بنشست خاندان نبوتش قوم شد بعد چی؟ سگ اصحاب کهف روزی چند؟ خدا وقتی اصحاب کهف رو تو سوریه که ما معرفی میکنه میگه اینا پنج نفر بودن شش میشوند سگشون هفت نفر بودن اشتمیشون سگشون بود. چهار نفر بودن پنج میشوند. از این سگ یاد میکنه. داستان عجیبی هم داره وقتی این بلسه انسان ها میگه اندهم فتیاتن آمن و بر ربهم و زدناهم هدا. این اصحابه که جوون مردانیم فتی یعنی چی؟ یعنی جوون جوون مرد اینه جوون بودن همشون جوون بود بله دقیانوس زمانشون و بساط و اینا کفر و شرک و بساط و اینها اینها به پا خواستن انقلاب کردن خواستن اینها رو بکشن از شهر و در رفتن سراغ اون برزامی قار قرآن میگه از قام و وقال و ربونا رب و سماوات و الارز قرآن میفرمه خدا میفرمه ما هم ر با های اینا رابطه برقرار کردیم ها هدایتشون کردیم پولسه گفتن ربنا حبلنا ملدونکه رحمه و حی علنا من عمرنا رشده دعا هارم خوندن پولسه رفتن اون معجزه بزرگ اتفاق افتاد تو قار اون برنامه 300 سال پولسه خواب و به صورت خواب و در واقع بیدار و تحصیب و هم و هم رقود هر کس میدید خیال میکرد اینا بیدارن ولی خواب 300 سالی داستانی فیلمش رو کاملا شما بله دیدید و شنیدید میخوام بگم اگه یک کسی فرض کن دعا بکنه مثلا شما بچه‌ها یه دعای پیغمبر ما داشتن که البته خدا بهشون فرمود پیغمبر ما جبرئیل می و آیات و قرآن رو می برای پیغمبر ما پیغمبر ما خیلی شتاب داشته عجله داشته این آیات قرآن رو در ذهنش بسپره با جناب جبرئیل یا الهام میدیده بخونه آیا آمد که ولا تعجل به القرآن من قبل ایو الله علی که بحیو عجله نکن ما این قرآن رو در ذهن تو حفظش میکنیم فقط بقول رب زدنی کی؟ چی؟ بلنده گو باریک الله رب زدنی علما این دعای پیغمبر ماست با اون همه علم از امدش میگه رب زدنی خداش ایش گفتم سیصد بار تو قران اومده پیغمبرم قل قل قل رب زدنی علما پیغمبر ما گفته رب زدنی علما شما بچه ها اگه بگید رب زدنی علما من طلبه بگم رب زدنی علما همین دعا رو بخونم عالم میشم بفرمایید میشم نه یه درخواست است اگه کسی میخواد عالم بشه چیکار میکنه میشه دبستانی میشه راهنمایی میشه دبیرستانی میشه دانشگاهی میشه به حضور مردم که باید اگه کسی دوان مثل که الان فردا شب شب جمعه است، این کسی خدا بگه استغفر الله ربی و عطوب اله با این گفتن استغفر الله ربی و عطوب گناهش گناهاش بخشه نیمیشه نه باید بره تصمیم بگیره گناه ها رو ترک بکنه واجبات رو انجام بده نسبت به قبلش اظهار پشیمانی بکنه آدم بگم میخواد به تنها استغفار کردن ی امور زدن نمیشه به تنها و گرب به زدنی آلم عالم نمیشه باید بره اون اسباب و وسائلی که خداوند قرار داده فرض کن یه کسی به خدا بگه خدای خدا من بچه بده خدا بچه میده نه باید بره زن بگیره آی موسیبی باید بره زن بگیره به عزلمتم که خونه تشکیل بده به مردم ازدواج بکنه با دعای پدر و مادر و اینا همسر خوب و زندگی پاک و بعد از نه ماه صاحب چه ی فرزند بشه ان شاء الله الله این ان بچه ها واقعاً اینجا میاد میشینید با قرآن و با برنامه های واجی ان شاء که الان گفت آمدن از پیغمبر ما سوال کردن مسئله پرسیدن پیغمبر بزرگوار فرمودن که من بهتون فردا جواب میدم یه وعده‌ای بهشون داد مناسب نبود اون وقت اون حرفا جواب بده نظر روی اینکه نمیدونستم مناسب ندید اونجا مطرح کنه گفت فردا بید. جوابتونو بگید آیه نازل شد ولا تقولن لشی این اینی فاعلون ظالک قدن الا ایشالله ای پیانبر اگه میگی فردا جواب میدم، دنبالش ببوچی انشاءالله تو پیغمبری درسته ولی از اراده و اختیار و خواست خدا که خارج نیست دیگه اگه بخوای به اتقای که خودت حالا پیغمبری جواب میدی چنینه چنان حواست باشه من باید لحظه به لحظه این لامپ باید از اون مرکز ژنراتور نور باتوم چیکار کنم؟ باید بد کو باید برسونم. اگه یه لحظه اون مرکز برقش خط بشه، شما هم لامپو چی هستین؟ خاموش میشید. خداوند به همه بفهمونه که حتی ها هم لحظه به لحظه نیاز به امداد و نصرت و اراده و راهنمایی خدایی دارن. پس ببینید این حرفی که من زدم تحویل بگیرید که مسئله چ قراره؟ همه ما همه شما پیغمبر ها همه ما انسان ها مشتاقیم که فرزندش باشیم خب. حالا دعا میکنیم خدا به اون فرزند بده اگه بخوایم خوب باشه سالح باشه ماهی چشم روشنی باشه پولسه. نه حالا که زنده ایم میدونید ما انسان ها وقتی هم که میمیریم اگه بچه خوب از خودمون به جا در روایات داره فرزند ساله بذاریم میشه فرزند باقیات ساله ها فرزند ساله که من از خودم باقی بذارم اصلا کله من نمردم غیر مستقیم مدام فرزند ساله اهل دعا اهل نماز اهل خیر اهل ثواب مدام من در ثواب کارم بچه‌چیا شریکم من یه کتاب می نویسم یه علم میگذارم یه صدقه جاریه یه مسجد می‌سازم مردم رفتم مستقیم یه کار نمی‌کنم آثار کارم رو خودم مدام اگه یه انسانی ندانا در دنیا بخواد در آلم برزخم از فرزندش بهره ببره باید فرزندش رو ساله بخواد و برای ساله شدنش هم باید مایه بگذاره چطور مثلا یه آقایی میگفت آقای کامکار میگفت که من برای بچه هم برای هشت ماه حساب کردم که بچه هم مثلا نه ماه بعد برم مدرسه تحتیلاشه که دروردم میشه چند ماه؟ میشه مثلا به حالیشون کشش کم ایش ده. گفت حساب کردن در مایی یک میلیون دارن برای بچه هم مدرسه غیر که چی بشه؟ سواد بشه درس بخونه چطور برای سواد شدن فرزندمون که میخواییم درس بخونه اون فردا اصلا بزونه کمکورم بره دانشگاه و چنین و چنان اینقدر مایه میذاریم برای صالح شدن و برای تربیت و رشد عقلی و علمی و فطری و اخلاقی و ایمانی بچه ها باید کار کرد، باید استاد باشه، باید معلم باشه، باید خلاصه کتاب باشه، باید تمرین و تمرن و امتحان و ممارست و، به قول آقای سعدی میگه که سالها باید که تا یه کودکی از روی طبع عالمی دانا شود یا شاعری چی آقا؟ شیرین سخن، اینجوری نیست که شما خیال کنید که یه کودک همجوره علکی دیمی، آ بدون باق و باغبان و نظارت و کنترل آ. یک درخت پربار میوهدار آقا اگه یه نهالی رو توی باغ میکرن باغبان باید سالها رو این کار بکنه تا میگه سالها باید که تا یک پنبه دانه زافتاب خلصه چی اون شعر بعدیش شهید رو چنین بشه و مرده ای رو کفن بشه پنبه دانه سالها باید که تا خلصه چیز آفتاب به تا لعل گرده در بدخشان عقیقا در یمن آه؟ سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب آفتاب به تا به سنگ ها بشه لعل بدخشان یا بشه عقیقا در یمن اصلا این, این تدریج این تکاملی سنت خداست که شما و شما اگه بخوایم خوب بشیم باید از کودکی و بچگی کارمون رو شروع کنیم حیعتی، مسجدی، نمازی، قرآنی، خلاصه با همه برنامه روش بکنیم بشیم عالم، بشیم اخلاقی بشیم خلاصه اهل ادب اهل چیز این روایتی که من براتون اشاره کردم و معنا کنم خیلی معتلتون نکنم پیغمبر خدا فرمودن این حب الخلاق محبوب ترین انسان در نزد خداوند یه جوانی است که جمال داره جوونی داره جعل جمالهو و شبابهو چی آقا فیطاعات الله جوان با نشاط زیبا پر پر انرژی از این سنین جوانی میاد خلاصه در راه خدا قدم برمی داره برای رضای خدا نمازش روزهاش اش بودش که اخلاقش علمش عملش ادبش در این روایتی که من براتون خوندم پیغمبر خدا میفرمد که که خداوند متعال یوباه رحمان ملائکته او خدا به فرشته افتخار میکنه مباهات میکنه به این جوانی که تو سنین جوانی رفته دنبال یللی تللی و لحو و لعب و رقص و دانس و حزگی و علودگی ها بلکه اومده در راه بندگی خدا صالح سالم اخلاق ادب ها اینجا داره که خدا به فرشتها میگه حاضا عبدی حقا بنده هفتاد ساله موهدی اگر حالا به قول معروف نمازی تاعتی فرض کن نمازی شبیه کاری خیری ثوابی خیلی انشاءالله ارزش داره ولی هیچگاه ثواب عمل بنده و امثال بنده با ثواب عمل شمای جوان قابل مقایسه نیست ارزش کار شماست عبادات شما، ایادت شما، کلوسه عزاداری برای امام حسین، اطعام، احسان، زحمت، ولی کار شما خیلی ارزشمند. اگه یه طلبه‌ای حالا هم تخصص من باشه واقعاً وقت بذاره، پژوهش کنه واژه‌ای که درش مسئله شباب شاب، یه شببه ما داریم، یه شیبه. شیبه یعنی چه؟ شیب یعنی چه؟ یعنی چی؟ شعیبه یعنی چه؟ اشتعلر رأس و شیبن که حضرت زکریه به خدا گفت خدا یا سر و صورت ما پیری فرا گرفته شعیبه یعنی پیری شعیبه شعیبه یعنی پیری اما شببه یعنی چه؟ یعنی شاب جوان, جوان آه؟ شابون میگه پیغمبر خدا با حضورش امردم که اصحابشون جای نشسته بودن میگواشون رو افتاد به اطراف دیدن یه جوانی داره خیلی قول معروف پر انرژی داره کار میکنه حالا کار چی بود؟ میگه که دیدن که بکر یسها داره تلاش میکنه یکی از اصحاب پیغمبر گفت که یا رسول چقدر زیبا بود که این جوون با این همه استعداد و توانش این هنر, هنر کار و تلاشش رو در راه خدا قرار میداد چقدر خوب بود این کار؟ اینجوری بود این جوان پیغمبر خدا که معلم بشریت و میخواد قدم به قدم نه مثل منبره ممبر فقط تبلیغ کنه چون پیغمبر ها اصلا قدم به قدم با مردم همراه و هم نشین میشدن نه برن بالای ممبر فقط خطابه بکنن و بعدم خداحافظ. نه اصلا قدم به قدم اون برنامه های ادایتی خودشونو به انسانها تضریغ میکردن تحمیل میکردن یاد میدادن عملا خودشونو مرد عمل بودن هم با زبان علم هم با زبان عمل انسانها رو تربیت میکردن. پیغمبر خدا هم که اگر این جوان این سعی و تلاش جدی که الان داره انجام میده اگر انجام میده برای خاطر که خاطر خودش رو از نیازمندی به دیگران بی نیاز بکنه آه؟ تلاش میکنه زوریه زعاف و فرزندانی داره به اون بچه هاش نونو رسونه این داره تلاش میکنه پدر و مادر آ ابوین اینی داره پدر مادر از کار داره میخواد زندگی اونارو تامین بکنه این داره تلاش میکنه که اضافه بر درآمدش به همسایش هم بده به اقوامش هم بده اگه این جوان خلص زی جلدن و قوه اگر این تلاشاش برای خاطره این کارها باشه همش فی سبیل همش برای خداست در راه خدا آ، ولی اگر تلاش میکنه که مال سروتی به دست بیاره لباس نو بخره خونه چنین امکانات چنان بعد به عنوان تفاخور تکاسر به دیگران فخر ببروشه بگه ولی این ما که ماشینمون اینه خونمون اینه زندگیمون اینه اگر با این انگیزه ها کار میکنه پول در بیاره این فیسابیل شیطانه فیسابیل شیطان اگه شما ها در این سنین و سال واقعا انگیزتون از مدرسه و درس و تحصیل و و اینها راستی انگیزه های الهی و مقدس باشه همه کارتون فی سبیل الله ما تو قرآن مجید یه واژه فی سبیل الله داریم یه واژه چیه ها من دون الله هر کی با انگیزه غیر خدایی کار بکنه من دون الله یعنی هیچ هیچه هیچ به علاوه هیچ مزدی نداره بلکه کارش هم باطل بی اما اگر کارها فی سبیل الله انجام بشه ها در راه خدا در راه رضای خدا در راه انجام وظیفه عبادت اون وقته که لحظه به لحظه اینا موجب تعالی تکامل درجه رحمت خیر قرب خدا میشه و شما میشه این حب الخلائق الالله عزوجل شاب حسن الوج چنین و چنان همین روایتی که براتون خوندم این حرف بودش مردم که امشب من هست و بهتون توصیه میکنم کنم کام که پیغمبر خدا فرمود اوسی کن به شبان خیرا. پیغمبر خدا نگفت اوسی کن به پیر مردا به میان سالا به مردم گفت چی آقا اوسی کن به شبان شبان سقه موالی هم شوابه اوسی کن به شبان خیرا. من الان زهران میرم تو مدرسه هفته سه روز که بچه ها وقت دارن میمونن نماز میکنن. الان این آقاز داره میبینم اونجا نگاه کنید آ نشست ایشون جز مکبرهای اون مدرسه هست یه پسر بچه امروز اومد از همین بچه های همسن سالیشون گفت که من خلاصه مکلف که شدم این مختصر خلاصه نماز نخوندم ولی الان رو آوردم به نماز نماز بخونم از من پرسید که حالا اون که هایی که مثلا مختصر نخوندم چجوری قضا بکنم ببینید اگه یه جوانی در این سن و سال نمازی، مسجدی، مکبر نماز قضاشو بخونه، وارد کار بشه، همینجور قدم به قدم هم که رشد علمی میکنه، رشد اعتقادی، اخلاقی، ارزشی پیدا میکنه. میشه یه انسان ارزشی، این داستان امام حسین که شما خیلی پاش سینه نمیزنید و محوری است و بسات اینا، یعنی اکثر جوان اکثر اصحاب امام حسین جوان بود. انگشت من اینو من نمیگم یه عالمی چند سال پیش اینجا تو محله بود فوت شد به نام آقای علی دوانی یک محقق و مورخ بزرگی بود ما که این مسجد هم دعودش میگرد ایشون یه کتابی دارن در رابطه با کربلا از اسم کتابش بزرگ شما که مسئله جوان هست جوان جوانم ایشون ادعاش اینه که اصحاب امام زمان همه جوانن هم اصحاب امام حسین اصلا میخواد بگه همین انقلابهای پیغمبرها رو جوان ها انجام میدادن ما تو انقلاب خودمون هم میبینیم که قصه های کامکار همجوره درسته جوان ها جوان ها واقعا انقلاب کردن انقلاب رو تو جنگ و دفاع مقدس بیمه کردن بعدم در مراحل بعدش بار سنگین انقلاب به دوش نسل جوان بود رو این حساب اون یه هم که حماسه امام حسین و کربلا رو سامان دادن بلسه نهان فتیتون آمنو برد بهم علمدارشون حضرت عبالفل 33 ساله بود حضرت علی اکبر 25 ساله بود حضرت سجاد 22 ساله اینجا به امامت رسیده تو کربلا، گربلا آه؟ به اون صورتی که براتون روزه میخونم دو صحبت میکنن پس عرض صحبت امشب من این بود که بچه ها قدر خودتون آن قدر عمرتون، قدر استادتون، قدر کتابتون، قدر مدرستتون، قدر بدر مادرتون، قدر این همه فراغت و نشاط و حافظه و انرژی و استعدادی که دارید بدونید و از این خوب استفاده بکنید. هم خودتون بسازید، هم, هم رفیقاتون، هم سن و سالاتون، ولی بله هم اینا رو اثرگذار هستید، دعوتش کنید به نماز، به نماز جماعت، به قرآن، به احکام، به اخلاق، به مسائل دینی، خلصه همجور قدم به قدم خلصه خودتون رو بالا بیارید که اون وقت مورد انایت خداوند هم خواهید. بود خب چون برادر مدده هم آمدند و آماده منم خلصه سوی سابقه روزخانی دارم و دوستم دارم شعرم دارم روزم میخونم مصیبت و خیلی خلاصه در اختیار دارم ولی حالا دیگه امشب میدم به آقای مدده تا ایشون ش... مدده شروع شروع کنن سلوات خط کنیم اللهم صل و محمد شما باشه همین عزاداری هم اما این هم قضایی که من رفتم نگاه کردم اولسه این تاومم است که چی آقا چون به نام امام حسین پخته میشه به نام هیئت پخته میشه کمیتشو نگاه نکنید ها کیفیتش چیه؟ خیلی گواراز خیلی بایی سلامت و بیمه شما خواهد بود خدا این زحمات از همه مؤسسین و مستمعین و مدده و واعظ و همه قبول بکنه سلوات خط کنیم